أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وعله الطاهرين خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم صبح خیر عرض می کنیم انشاءالله که از نعمت صحت و, صح... و سلامت کامل برخوردار هستید و انشاءالله به لطف الهی از هر گونه گزندی هم دور مانید. ما در مباحث گذشتهمون بحور شعری رو خوندیم تا بحر رمل و بحر رمل رو هم قسمت تام به اون رو من برای شما بیان کردم و قسمت مجزوعش رو باقی موند گفتیم که بحر رمل بهری است که از نظر شعری راحت از شعر گفتن در او حتی تعبیر به حمار و شعرا ازش شده و کلید این بحر هم این بود رمل ولا ابوره تنويح استغات و رمل و لابخره تنويح استغات و فائلاتن فائلاتن فائلا یعنی فائلاتن فائلاتن فائلاتن تامش از شیشتا تا تشکیل شده 3 تا در مصره اول و 3 در مصره دوم تغییراتی که تو این بهر پیدا میشد سه تا تغییر بود یکیش زحاف بود که خیلی زیاد هم می آمد این زحاف به اسم زحاف خبن و دومین حرف ساکن تفعیله رو حذف میکرد و فائلاتون تبدیل به فعیلاتون میشد شود تبدیل به فعیلاتون این چون زحاف هست در همه جاهای بیت پیداش میشه در هشت و زرد و ممکن از فاعلاتون رو فعیلاتون ببینیم و چون زحافه لازم هم نیست دومیش علت هست بود که سبب خفیف از آخر تفعیله حذف می شد فائلاتون یعنی تون حصف شد اون قطع تیره آخر و موقعی که فائلاتون رو بهش داخل می شد اونو تبدیل می کرد به فائلون فائلون و چون این علته علت یادتون باشه گفتیم تو هش دیگه نمیاد بعد این فائلاتون که به فائلون تبدیل میشه و میشه محزوفه گاه یوقات زحاف قبل بهش داخل میشه و فائلون رو میکنه فائلون و این واجب نیست این قسمت زحافش ولی اون قسمت علتش واجبه اگه باشه باید ادامه پیدا کنه چون علت پس فاعلاتن بشه فاعل محذوف است فاعلن بشه فعلن این محظوفه مخبون است بعد علت قصر داشتیم که مقصوره می میشد و اون حذف ساکن سبب خفیف از آخر تفعیله یعنی فائلاتون اون نون هست میشه بعد اون تا هم ساکن میشد، میشد فائلات و چون فاعلات نداشتیم بهش میگردیم فائلان نشد. و موقع که داخل میشه به فائلاتون اونو تبدیلش میکنه به فائلان این روش میگن مقصوره چون دو تا علت داشتیم یکی علت حذف و دیگری علت قصر پس بنابراین تو تامش ما سه نوع داشتیم یکی تام صحیح رمل تام صحیح و دیگری رمل تام محظوف و دیگری رمل تام مقصول از نکاتی که تو این ستا بود این بود که عروض این ستا همیشه محضوفه بود یعنی عروضشون همیشه فائلون فاعلات، فائلاتون فائلون خب ولی ضربشون تقسیم می ضربشون یک بار می مشود صحیح یه بار ضربش میشد فائلون میشد محظوفه یه بار ضربش میشد فائلان میشد مخصوره پس اگر شیشتومین تفعیله یعنی ضرب فاعلاتون باشه میشه رمل تام صحیح اگر شیشتومین فائلون باشه میشه رمل تام محذوف. اگر شیشومی فاعلان باشه میشه رمل تام مقصور این تا اینجا خب اگر عروزش همیشه فاعلان هستش و ضربشه که به سه قسم صحیح و محضوف و مقصور تقسیم میشه و میشه سنوه تو این ستا کدومشون بیشتر استعمال باشه گفتم خب اون رمل تام محظوف از همه بیشتره چرا چون اون راحت داره یه بیت مسرح و غیر مسرح هم نداره چون میشه وزنش فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فاعلون از بیت یک تا بیت آخر حالا بیت مسرح باشد یا نداره ولی در اون دو قسم دیگه که تامه صحیح و تامه مقصور هستش در بیت مسرع عروض تابه زرگش میشه عروض تابه ضرب میشه این مباحث رو به طور کامل با هم خوندیم و من الان تکرار کردم و فقط مثالهاش رو نگفتم و الا بقیه رو همه رو بیان کرد یعنی درس گذاشتمون رو اومدهش رو بیان کردیم الان میایم سر رمل مجزوع رمل مجزوء رمل المجزوء اصلا این بود که یه جزء از صدر بیت یه جزء از عجز بیت هست شده یعنی یه فایلاتون سوم و یه فایلاتون ششم حضم شد یعنی میشه فایلاتون فایلاتون فایلاتون فایلاتون, فایلاتون. یعنی چهار تا ضرب بیت خیلی یعنی اون زربا بیت خیلی توم تر میشه رمل و الویسون زکر, ال... زکر الاروزیونه ذکر لعروزیونه لی مجزو رمل انواعن عروزی ها برای مجزو رمل انواعی زکردن عروزی ها برای مجزو رمل انواعی زکردن اکثرها قلیل الاستعمال استعمال انواعی ذکر کردن اکثر اونها استعمالش قلیله بینه مثلا فرض کنید که ادم توی یه دیوان ممکنه یه دونه پیدا کنه یا حتی ممکنه تو دو تا دیوان یه دونه از اون وزن پیدا این دیگه قابلیت که انسان بیاد در کتابهای عروضی اینها رو به دانشجو یاد بده و حفظ بشه نداره ها برای مجزوع رمل انواعی زکردن اکثر و ها غلیل الاستعمال بیشترین این انواع استعمالش کمه قابلیت حس حفظ نداره و نحن و نختص رو الان واقع منها و ما اکتفا میکنیم به یه دونه از اینها یه دونش خب این یه دونه ای که ما اکتفا میکنیم چه خصوصیتی داره که ما بشت اکتفار میکنیم علا واحد منها شع低ن به کسرتن این یدونه شیوع دارد به کسرتن یعنی معکسرتن یعنی کسیرن یعنی این یدونه شیوع دارد شیوعی کسیر نحن و نختت رو واحد منها شع低ن شیوع کسیر این یدونه شیوع دارد شیوع زیاد چی هست این یه دونه؟ و خوبه از مجزوع از صحیح اون عبارت هست از مجزوع مجزوعی که صحیحه یعنی توش علت قابل ادامه نیست و خوبه مجزوع صحیح میگیم این چجوری هست مجزوع صحیح؟ تو اون طرف مجزوع صحیحمون اگر یادتون باشه عروزش محصوفه بود میگه وحبا ماکان تفعیلت و عروزهی فایلاتون و ضربهو کذالک عروزش فایلاتون زربشان فایلاتون یعنی هیچی توش نیست یعنی چهار تا فایلاتون خالص فایلاتون فایلاتون فایلاتن فالاتن دوباره بیت و بعد فالاتن فالاتن فالاتن فالاتون هیچی نیست این یدونه میگه شیوع داره و رمل مجزوع صحیحه حالا ممکن است که به این فاعلاتون زهاف خبن داخل میشه چون زحاف خبن هیچگونه ممانعتی نداره این داخل ششکالی نداره و ضربهو که زالک نه به قول شاعر مثل قول این شاعر که ما میبینیم سیسیر المرعوی اومند سیسیر المرعوی اومند جسدن ما فیه رو. سیسی رول مرعو من جسدن مافیه روح حالا اینو بخونیم مافیه روح وقف رو به سکون کنیم یا جسدن مافیه روحو درست شد؟ یعنی اشباع کنیم که بایدون باشو خوندیم حرکه زنمرو و ازش باید میگه چون بیت های قبلی او نشون دهنده این هستش که آخر او ها هستش و مضمومه که اشبا میشه مثلا تو بیت قبلش داره فرض کنیم نروهو میرویم تو بیت بعدش مثلا داره که مثلا مروهو و هو این نشن دهنده این هستش که ها به ذمه میشه پس شعر این طور خونده میشه سیی سیر المرء یومن جسدًا ما فيه روحو سیی سیر المرء یومن جسدًا ما فيه روحو خب المرء الفلام داره الافلامش الافلام جنسه یعنی کل و مرعه اینجا مرع درسته یعنی مرد در مقابل مرعه یعنی زن ولی اینجا منظور از مر انسانه یعنی باب تقلیب قلب دادن لفظ آمده مذکر مثل جاهایی که شما یا ایوهاللزین آمنو میبینید خب یا ایوهاللزین آمنو فرقه نمی کنه. یعنی غیر از آمنو آمن هم اگر باشند معلسینی که ایمان آوردن رو هم شمید خب می. بهش میگن باب تبلیم خب میفرماید سیسیر المرعو سار یسیرو رو از افعال ناقصه است برای تحویل سیسیر المرعو یعنی خواهد شد انسان یا روزی در روزی یعنی زمانی ظرف است خواهد شد انسان در زمانی جسدن خبر سیاسی روز و این یومن هم ظرف متعلق به اوست یعنی مجسدن خواهد شد انسان در روز روزی از روزها یومن نکرست یه یه روزی خلاصه انسان جسدی خواهد شد جسمی خواهد شد ما فیه روحو یعنی روحن. ما مای مشبهتۨ بهلیسه فیهه خبر مقدم روحن اسم معخر مای مشبهتن بهلیسه اگه اسم و خبرش جابشا شه دیگه عمل نمیکنه جسدی میشه که ما فيه روحن روح درش نیست ما الان هم جسدیم اما جسد ما روح دارد لذا زنده ای اما اگر جسدی بشد که روح ندارد این دیگه جسد خالیست یه حیات ندارد پس منظورش چی بود؟ یعنی سیاسی رول مرعوی و من میتن جسدن یعنی میتن خواهد شد انسان در روز روزی از روزها یه زمانی میتی که مافیه روحون هیچ روحی در وجود او نیست. انسان روزی خواهد رسید هر انسانی که خواهد مرد و روحی در وجود او نیست مافیه روحون خب شعر مشخص یعنی روزی انسان خواهد مرد کل و نفس زائغتول. کل <مار و> من علیها فان همه یک روزی خواهم سیسی <مار> رول مرعو یومن جسدن ما فیه روخن حالا نگاه کنید سیسی <مار> رول <من> فعلاتن مقمون است باشید ایچشکال من میتونستم مقمونه نباش مرعو یومن فعلاتن صالبه جسدن ما فائلاتن مخون است خوش فیه روحو فائلاتن سالم است سیسیرن فائلاتن مرعو یومن فائلاتن جسدن ما فا الاتون فیه روحو فا الاتون بیت بعدیشم همینه بیت بعدیشم همینه بیت بعدیشم همینه این الان رمل مجزوع صحیحه حالا میگه که یه تلنگر میزنه میگه ولو قرعنا با لو میگه لو برای شرط محاله یعنی شرط ممتنه مثل اینکه من میگم لو جعتنی لعکرم تو کرد اگه اومده بودی پیش من احترامت میکردم تو شد لو جعتنی لعکرم تو کرد. یعنی چی؟ یعنی نیومدی اکرامی هم نشد ممتنه شد نشد این هم میگه ولو قرعنا ولو قرعنایه نمیشه اینطور بخونیم حالا به فرض اگر خوندیم ولو قرعنا هازل بیتب به تسکین حرف روی اگر ما به فرض اینجا که نمیشه تو این قصیده این قصیده ما ما بعدش ها مزمومه اشباه شده مجبوریم بخونیم روحو حالا به فرض این بیت یه دونه بیت بوده ماغب رو بعد نداشته و ما میتونستیم این رو وقف به سکون خونیم و بخونیم ما فیه روح میگه به فرض ولو قرعنا هازل بیت به تسکین حرف روی حرف روی یعنی اوها اگر ما قراعت کنیم این بیت رو با ساکن کردن حرف روی لعص به ها. جواب لوهه اسفه یعنی ساره لعصف هم مجزوع رمل مقصور اون موقع میشه مجزوع رمل رمل مجزوع مقصور چه مقصور دیگه یعنی چی؟ یعنی به جایی که آخری بشه فائلاتون میشه فاعلان یعنی وزنمون اینطور میشه فائلاتون فاعلاتون فاعلاتون فائلان میشه عمل رمل مجزوه مخصور از دومیش میشه رمل مجزوه مخصور فایلاتون فایلاتون فایلاتون فایلاتون, فایلاتون. ولو قرعنا البیت به تسکین حرف رویه لحظه همین مجزوه رمل المخصوره و هواللزی تکون و تفعیلت و علی علا فایلان و اون رمل مجزوع مقصور اونیه که ضربش به جای فائلاتون شده فائلان ما بخوندیم مافیه روح مافیه روح درست شد؟ فیه روح فیه روح اون موقع به جای اون خط تیره آخر یه نقطه داریم میشه به جای فاعلاتون فاعلان. وزنمون میشه فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فایلان میشه رمل مجزوع مقصور و ها ولزی تکون و تفعیلت و ضربهی علا فاعلاتون حالا اینجا پایین یه حاشیه داره میگه که این که گفتی ولو قرعنا یعنی اگر به فرض بتونیم بخونیم که نمیتونیم چون قافیه شعرمون های است هست شعرهایی داریم که از این قسم رمل مجزوع مقصور باشه میگه بله پایین نگاه کنید و من ها زن من منن از این نوع از مجزوع این دوتا بیت این دو تا بیت از دو تا قصیده ها قافیه هاشون هم میبینید فرق میکنه وداع و دیگری انکبوت ته وداع ساکنه انکبوت ساکنه میگه اشرق البدر و علینا من سنیات الوداع اشرق تابید آن ماه تابان بر ما البد رفایل علینام تابید آن ماه تابان بر ما از کجا تابید؟ من سنیات سنیات جمع سنیه است یعنی اون راهی که توی کوه اون راه کوهی من سنیات الودا اون تپه که اون راههای های کوهی رسیده به بالاش و وداع هم یعنی خداحافظی یه نفری که داشته میرفته مثلا از یه راهی میرفته بالا مخوااصه بره دیگه مثلا فرض کنید در مکه خارجشه و بره به طرف مثلا مدینه راه کوهی رو میگرفته میرفته بالا این سنایا این تپه رو میرفته بالا تا میرسیده به نقطه بالای اون تب اونجا که میرسه بر می نگاه میکرده خداحافظی آخر راهی میشده به طرف پایین دیگه از اون که میاد پایین دیگه نمیدیده دیگه درست شد میگه اش رقل بعد رو علینا رو اینا چون تو شب هم معمولا حرکت میگه اون ماه تابان منظور اون شخصی که ممدوح بوده این بر ما تابید از سنیات ودا از بالای ها به هنگام ودا من سنیات وداع متعلق به اشرق است. اشرقال ودر علینا من سنیات وداع. نیفتید. بیت. بیت بعدی از این قصیده دیگه این نماد دنیا که بیتت تشبیه تمثیلیه دنیا و اینکه ما به او اعتماد کنیم و اون رو به اول خودمون پشتیبان خودمون بگیریم براش تلاش کنیم چیزی به دست بیاریم از او فکر کنیم که اون چیز میتونه ما رو نجات بده این دنیا هیعتش کبیتن مثل یک خانه است که یه کسی اون رو میسازه و احساس میکنه این خانه محل امن و او رو در مقابل بلایا حفظ میکنه اما کبیت بیت من من بافته شدن اون ساخته شدن اون من انکبوت از جانب انکبوته نسجه مبتدا من این صفت بیت اما ساختش رو انکبوت انجام داده خانه انکبوتیه و خانه انکبوت این نا او هنر بیوت لبیتو انکبوت از سوزترین بیتها بیت انکبوته این نوید دنیا که بیتن نس من انکبوتی اینطوری نباید بخونیم بلکه باید بخونیم چی؟ نس جوهو من انکبوت این من انکبوته این قصیده که این بیت توشه همهش تاش ساکنه درست شد مثلا بیت بعدش داره مثلا فرض کن تا خود درست شد بیت بعدش مثلا داره فرض کنید که ره اینطوری مثلا ساکنند همونطور که تو بیت قبلی من سنا یا من تو بیت قبل و بعدش هم ودا کلمه ای که آمده عین دارد درست شد موسیقی مثلا فرض کنید آمده باشه که مثلا انواع این ساکنه درست این نوود دنیا کبیدن نس جهومن هم کبود خب تموم شد دو تا مثال هم برای رمله مجزوع مقصور زد پس برای رمل مجزوء هم دو کردیم یکی رمل مجزوع صحیح که چهار تا فاعلاتون بود فاعلاتون فاعلاتون یکی رمل مجزوع مقصور که فاعلاتون سوم شد فاعلان <تص> <تص> یعنی فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون فاعلا خلاصه تو بحر رمل و بحر رمل امروز من دوباره تکرار کردم خلاصه این بحر رمل چطوره؟ میگه یعتی بحر رمل تام من و مجزود تام و مجزود تام میشو گفتیم سناه مجزودشم در مجموع دو نوع درست کرد و یعط تفیلاتی تفعیلاتهی زهاف الخبر بر تفعیلهای بحر رمل زحاف خبن داخل میشه یعنی به جای اینکه بشه فاعلاتن میشه فاعلاتن خشن و عروزن و ضرب هم در حذف هم در عروزش هم در ضربش هم در تام هم در مجزو داخل میشه و تطخل على تفعیلت ضربی و تفعیل زربش داخل میشه علت هست. علت حذف داخل میشه به تفعیل زربش یعنی تفعیل ضربش همیشه فائلان چی فائلان؟ تفعیل ضربش توی تام ما فائلاتون فائلاتون فائلان این تو هر ستاش بود و ببخشید توی تفعیل ضربش که داخل میشه فائلان اینو میشه و قصر که داخل میشه یه میشه یعنی فاعلن بشه شیشو میشه یه نوع بشه اینم یه نوع هم بشه اینم یه این سنوش اما همیشه تفعیله عروزش فاعلن هستش و همیشه تفعیله عروزش محضوف است. خب این دو دیگه بذار تکرار کنم که در تامش رو میگه توی تامش تفعیله عروزش همیشه فائلون محضوفه ولی ضربش زربش سجور میشه یه بار میشه فائلاتون میشه صحیح یه بار میشه فائلون میشه محظوفه یه بار میشه فائلان میشه مقصوره درست شد؟ میشه مقصوره پس تفعیله زربش سه تو توی تام تفعیله عروزش همیشه فائلون حالا اگر این رو داشتیم یعنی رمل تام صحیح رمل تام مجذوب چه رمل تام محظوف رمل تام مقصور کدومشون گفتیم بیشتره؟ گفتیم محظوفش بیشتره چرا؟ چون اون یه دست میشه دیگه بیت مسرل و غیر مسرلش فرقی؟ نمیکنه. و تدخل و علا تفعیلت زربیهی علت الحصف و القصر یعنی علت الحصف و علت القصر و علا تفعیلت عروزهی و داخل میشه بعد تفعیله عروضش هم درست شد داخل میشه همین علت حصف علت فصل اما انکان مسرعا اگر مسرع باشه چون عروض تابه سر یه تیکرم تو این خلاصه باید میگفت که این بهازالبه بهازالبه فتام بهازالبه فتام تفعیلتو عروزهی محزوف تفعیلت و عروزهی محظوف. و هاز البحر فتامه این بحر در تام تفعیلت و عروزهی محزوف دائما تو هر سه قسمش. این بحر رمل رو من کامل براتون گفتم دو سه بار تکرار کردم مباحثش رو جمع و جور کردیم که یک مقداری به قول خودمون حقش ادا شده باشه چون نیست که شعر در این زیاد سروده شده این یه دلیل داشت که تکرارش رو زیاد کردم یه دلیل دیگرش هم اینه که این بهر رمل در واقع به نوعی زمین ساز بحر بعدیه که درسمون هستش بحر رجز و رجز توی شعر عربی فراوان است چون وزنش هم به گونه است که آهنگ تندی داره و ز... سریع هم میشه درش سرود خیلی از رجزها که ما میبینیم بلبداهه سروده شده تو میدان جنگ مبارزی میامده رجز میخونده دو بیت سه بیت بر این وزن میسروده و این دو بیت سه بیت رو به عنوان شعار خودش چیار میکرده تکرار رجزهای زیادی داریم برای همین هم از میگن فلانی رجزخانی میکنه یعنی توی میدان جنگ داره مبارز طلب آیا رجز فقط برای همین به کار نه نه الان مثلا شما این بهر بهریه که کشش گفتاری داره یعنی راحت میشه توش مطالب و بریزی قالب خیلی است برای وداه گفتن حتی شما سرودهایی دارید بسیار بسیار بلند که تو مطالب علمی است اما تو بحر رجز ریخته شده قصیدهاییم که اینطور سروده بشه بهش میگن ارجوزه جمعش میشه عراجیز ارجوزه جمعش عراجیز یعنی قصیده هایی که بر وزن رجز مثلا ابن مالک یه الفیه داره الفیه یعنی هزار بیت نحو رو اومده تو هزار بیت گفته نحو هزار بیت همه ابوابش هست که این شرح ابن عقیل ابن عقیل اومده این هزار بیت رو شرح کرد همه اون عبیات آقای ابن مالک که تو نحوه همشون رجزن هم. این از این بحر رجزم قال محمد هو ابن مالکی، احمد و ربی الله خیر مالکی تا آخر همش بحر رجزم هم. خب پس بنابراین این بحر اونها البته دیگه شعر نیستند، بهشون میگن منظومه یعنی وزن شعر رو دارن شعر باید در رابطه با احساسات باشه به با قول خودمون تو اون جانر شعری سروده شده باشه اینا در واقع اومدن قالب شعر رو گرفتن مطالب علمی رو توش ریختن اونها نظم وجزی دارند شعر رجز نیستن نظم رجز منظومه هستن نزا الفیه رو میگن منظومه الفیه ارجوزه عرفیه الفیه بحر رجاز مفتاحش اینه مفتاح البعد فی ابهره لن رجازه بحرن فی ابحر الارجاز بحر یسول مستفعلن مستفعلن مستفعلن یعنی مستفعلن در بحرهای لجز بحری وجود دارد که آسونه فی ابحر الارجاز خبر مقدم ابحر جمع بحر اجازهش اضافه شده و الارجاز جمع لجز در بحرهای رجزها بهریست. فی ابهر خبر مقدم بحر مبتدا می است. یسهلوا فعل و قائل سلی بحرون صفت بحرونه. در بحرهای رجز در بحرهای رجزها بهدیست آسان می‌نماید. اب ابهر یا سوو مستف الان مستف الان مستف ابهر پس بهل رجز از شش تا مستف تشکیل شده مستف الان مستف الان مست الان یعنی تامش از شش تا مستاف الان مثل بحر رمل که تامش از شش تا فعالات تشکیل شد. اون بحر رمل فعالاتون فعالاتون فعالاتون فعالاتون فعالاتون فعالاتون راحت بود سرودن درو این هم مستاف آلن مستاف مصطف الان مصطف الان مصطف راحت از سرودن درون این بحر رجز است آن بحر رمل بود فی ابهر العرجاز بهرون یه سهلو مصطف الان مصطف الان مصطف الان میگه و هازل بهرو تعلف من تفعیلت مصطف این بحر تشکیل شده از تفعیل مصطف الان تتكرر ست سه تمرات که تکرار میشه 6ش مرتبه تتکرل رو سه تمراتن و حاضل به و یلففه تفیلت مستف الان تتگرل سه ف تام در تام از این بهره رجز شش مرتبه مستف تکرار میشه الان نهوه تالی به این شکلی که شما میبینید. و حاضر بحرو من این تفعیلت مصطف علان تتکرر رو ست تمرواتن فتتام به منحو. الان نحوه تالی. و این بحر تشکیل میشه از تفعیله مصطف علان که تکرار میشه در حالی که تکرار میشه شیش مرتبه در تام محضو به نحوه زیر. مصطف علون، مصطف علون، مصطف علون، مصطف علون، مصطف, علون، مصطف, علون، مصطف علون. از زلبر حالا تغییراتی که توی این میاد رو باید انسان به خاطر بسماره یک ذهاب و همون چیزی که توی قبلی هم داشتیم که دومین حرف ساکن رو حذف میکردیم فائلاتون میشد فائلاتون زهاف الخبر بقید عرفناه و سابقن و هی نمایت خلالا تفعیلت مستفعلن موقعی که داخل میشه بر مس تفعلن اون سین رو حس میکنه یوغیر و هایلا مفاعلان. ما دیگه چون وقتی سین رو حذف کنیم اون قابلیت بیان نداره لذا تبدیل میشه به مفاعلان مفاعلان وزن فرقیه یوغیر و هایلا مفاعلان. و همه یلحق و جمیع تفعیلات ها زربن هشون عروزن زربن و این زهاب خب داخل میشه بر همه تفیلات های این بر چه در هشبش چه در عروزش چه در زربش یعنی خیلی ما تو بحر رجز میبینیم که به جای مصطفح علان شده مفایران یعنی اینطوری شده شده مصطفعلون مفاعلون مستفعلن مصطفعلون مصطف مفاعلون مثلا یکی دو تا سه تا از این مصطفعلون ها تبدیل شده به مفاعلن و بهش میگن زهاف خبن بهش داخل شده مخبونه چون زهاف هست قابل ادامه پس زهاف الخبن و قد عرفناه و و هی نمایت خدا علا تفعیلت مستفعلن یغیر و حائل و و هوه یلحق و جمیع تفعیلات آزلبن خشفن و عروزن و زربن خب دو دو زحاف و تیه و اونی که بهش داخل شبش میگن متویه اون زهاف خط میگن مخبونه اینو میگن مطویه زهاف و تای و هو حذف فعل حرف از ساکنه اربعه حذف حرف ساکن چهارم مص تف اون فا و هی نمایت خلالا تفعیلت مص تف یا غیر هاالا مف تعلال با یوقه هوا و ول غالبا این به هش و عروز البته میدونید که چون زهافه باید به زربم داخل بشه جاش تو زربم هست ولی خب غالبا در هش و عروز دیده میشه در هش و عروض دیده میشه در زرب بیاد مفتعلون و ذهاف تی داخل شده باشه کمه خیلی کم، غالبا در هشف و عروض هست تی و هوا هزف و حرف از ساکن عرابه و هین ما و ما یدخل و علا تفعیلت مستفعلن یو غیر و حایلان و هوا یل حقال و لا قالبا قالبا به هش و عروز داخل میشه به زرب داخل میشه. این دوتا تا پس مستفعلن بشه مفایلون مخبونه که در هش و زرب و عروز داخل میشه و مخبونه است مستفعلن بشه مفتایلون میشه مطویعه و این در تشب و اروز غالبا دیده میشه در ضرب نیست سه زهاف الخبل با زهافه زهاف الخبله میگه و هو زهافون این زهافیه که قبیحه یعنی وارد شدنش زرواهنگ رو به هم می‌ریزه یعنی در واقع چیز خوبی نیست سعی میکنن ازش اجتناب کنن زعاف قبیهیست قد یل چون قبیهه قد بر سر فعل مزاره یعنی گاهی برای همین کم میشه داخل بشه قد حق و نادرند کم میشه که بیاد و به مصطف داخلش. داخل شه میگیم این چجوره؟ میگه فی و غیر و موتعیلون یعنی یه سبب سقیل دوتا یون یه وطد مجموع موتعیلون زحاف خبله مخبوله بشه این زحاف خبل رو اگر خوب دقتش بکنیم جمع بین اون دوتا زحافه یعنی حرف دوم ساکن و حرف چهارم ساکن حذف شده مستفعلن تا و فالو برداریم میشه متعلون یا متعلن یعنی هم زحاف تیک توش باشه هم زحاف خبن توش باشه درست شد دیگه بهش نمیگیم مثلا محظوفه ی مطویه وش میگن چی؟ مخبوله زحاف خبر بشتن این کمه جمع بین دو زحافه و هوه از قدیل هو و مستفعلون نادرن فیغیر و هایلا میگه اگه دقت کنید همونطور که من گفتم و هو عبارتون ان اجتماع ان اجتماع زحاف الخبن و تیه این عبارت است از جمع شدن زحاف خبن و تیه فی تفعیلت مصطف ارون هم اون هم این دوتا با هم جمع شدن جمع بین دو زهاف و خوبه عبارتون ان اجتماع زهاف الخبن و تیه فی تفعیلت مصطف ارون و نوع من از زهاف قد جا به کسرتن فی الفیت ابن این نوع زهاف که زیاد اومده نه که از این هزار بیت نحصد بیتش اینطوری یعنی منظور اینه که نصفتش میشه بشموری مثلا چشمگیره نه اینکه باز مثلا فرض کنی 100 تا از نحصد تا هزار تا بیتش اومده این قدم نیست ولی هست تعدادش کسرت داره از الفیه ابن مالک که من بهتون گفتم که در نفت سروده شده این هزار بیت تو بحر رجز این ارجوزه شما این زهاف رو تو اونجا زیاد ببینید و نوع من از زحاف قد جا به کسرتن فی الفیه ابن مالک این نوع از زهاف خیلی زیاد اومده قد جا به کسرتن یعنی محکسرتن یعنی کسیرن یه الفیت ابن مالک در الفی ابن مالک من. مثال زده پایین نگاه کنیم نحو قول ابن مالکن مثل قول آقای ابن مالک و کنیابتن ان الفعل بلا تأثرن و کفتقارن اصلا و کنیابتن ان الفعل بلا تاثرن و کفتغارن اصلا این بیت تو الفیه ابن مالک تو همون اوائل الفیهشه در رابطه با بحث معرب و مبنی اونجا میگه ول اسم من و اوربون و مبنی لشباهه منال حروف مدنی میگه اسم به دو دسته مورب و مبنی تقسیم میشه اسم دو جوره مورب مبنی لشباهه منال حروف مدنی اینکه مبنی شده به خاطر شباهت به حرف یعنی شباهت به حرف از دو جهت رسونده شده مبنی و شباعتش هم مدنیه یعنی معارض نداره اینا تو بحث نحوه که باید. پس اسم دو دست هست مورب مبنی و مبنی هم علت داره مورب اصل علت نمیخواد. مبنی علتش اینه که شباعت به حرف رسونده وقتی شباعت به حرف برسونه حرف درش تأثیر میکنه حرف مبنیه اینم میکنه مبنی من بس شباهت ها رو میشمره. میگه کشبه کش الوضعی فی اسم جعتنا و المعنوی فی متا و فی هنا میگه مثل شباهت لفظی یعنی اسم یه حرفی یا دو حرفی باشه مثل تو اسم دوتا اسم جعتنا تو و نا زمائر، اینها شباهت لفظی دارند یعنی بر یه حرف یا دو حرف بحث شدن که اصل در حروف اینه که در یه حرف یا دو حرف بحث و ول معنوی فی متا و فی هنا و شباهت معنوی ما در متا اسما استفهام هنا اسم مکان اسم اشاره مکان اینها داریم که اینها مبنی هستند درست شد؟ به خاطر اینکه که شباعت به حرف رسونده مثلا متا متای استفهامیه درست شد یا متای شرطیه اینا دربر گرفتن معنای حمزه استفهام یا معنای این شرطیه که حرفه چون معنای حرف استفهام یا معنای شرط رو دربر گرفتن شدن مبنی دو تا رو گفت بس که بعدی میگه میگه و یابتن علفه مس اینکه یه اسمی نیابت از فعل بکنه یه اسمی نیابت از فعل کنه خب اسم فاعلم نیابت از فعل میکنه عمل میکنه میگه زیدون زاربن امرن الان و قدد میگه این نه این نه زیدون زاربن امرن نه چرا زاربن نه میگه و کنے نیابت عن الفعل بلا تاثره نیابت از فعل بکنه بدون اینکه عامل برش تاثیر کنه الان زارب شما میتونید بگید ان زاربد هازار زاربان خبر مقتدی عامل توش تاثیر میکنه من زار من برساشتن یه نایب از فعلی باشه که عامل درو تاثیر نمیکنه. خوب خب آمل از فعلی که عامل آمل نایب از فعلی که آمله نیابت میکنه از فعل عامل هم در او تأثیر نمیکنه مثل چی؟ مثل اسم فعل اسم فعل ها پس شباهت نیابی دارن اسم فعل شباهت نیابی داره درست شد به اسم فعل شباعت نیابی داره به حرف یعنی چی؟ یعنی چطور حرف عوامل بر سرش در نمیاد اسم فعل هم عامله ولی هیچ عاملی بر سر او در نمیاد مثل حرف حرف عمل میکنه هیچ عاملی هم بر سر حرف در نمیاد و کنیابتن علی الفعله بلا تأثیر مثل اسم فعل ها مثل اسم فعل درست اسم فعل دیگه؟ مثل مثل سح مثل آمیل هم. یعنی استجه اینها اسم فعلند هم مثل روویده روویده زیده یعنی اطروک و بلش خب اینها شباهت نیابی داره و که نیابتن عمل فعل بلا تازفرن و که افتغارن و شباعت چطور شباعت نیاز چطور حرف نیاز به جمله داره تا معناش معلوم شه؟ اگر اسمی هم نیاز به جمله داشته باشه برای اینکه معناش معلوم بشه اسمی نیاز به جمله داشته باشه اونم شباعت به حرف داره مثل محصولات محصولات همه جمله سله میخواد. حالا ممکنه شما بگید یه مبتدایی هم هست یه جمله بعدش صفتشه و مصبق ابتدایی به نکرشت خب این مبتدا هم نیاز به این جمله داره اون نیازش نیاز اصلی نیست لذا میگه و کفتغار اصله افتقاری که ذاتی باشه اصلی باشه یعنی همیشه باشه هست بلا این نکره الان شده مقتدا نیاز به این جمله صفت داره این به خاطر اینکه الان شده مبتدا نیاز داره ولی بله اگه بره بهش فایل دیگه نیاز نداره. دانشجو کتبهارن اسلا بهش میگن شباهت افتقاری. شباهت افتقاری. مثل موصولات که احتیاجشون افتقارشون، نیازشون اصلیه. خب ما شاهدمون سر نبود که این نحو بخوانیم اینجا گرچه توضیح دادیم براتون این مبحث رو ولی این بود که اینو بخونیم الان اگر شما تقطی کنید وک نه وکنه یا بتن انل فعله بلا ت از سورن و کفت قارن اصلا میبینید که مصطف علان در آمده متعلان متعلان الان شما یه تقطی بکنید این رو یک دقیقه تقطی کنید ببینید کجای این از این شیشتا تا علانش متعالون میشه که یه مقدار دستتون را بیفته تا این ظحاف خبر رو دیده باشید. انجام بدید؟ خب انشاءالله که تونسته باشید تختی کرده باشید و کنیا بطن انل فعل بلا تأثرن و کفتغارن و کن و کنیا میشه چی؟ موتعلن بَ کَ نَ یا بَ تِن بَ بَ یا بَ تِن ا ا متعدن بعد کان نه یا متعدن بعد تن تان دن بافوردن سین تو اولی در اومد متعلن که میشه چی؟ مخبوله دومی در اومد مفاعلن که میشه مخبونه سومی در اومد مف ط مف که میشه مطبیه چرا اینو براتون مثال زدم چون هر سه تا توشه ذعاف اولی متحنون مخبوله زحاف دومی مفاعلن مخبونه زحاف سومی مفتعلن مطبیه ما ستا زحاف داشتیم ابن مالک هر رو تو این مصره آورده وسطی مفاعلن مخبونه است آخری مفتعلن مطمیه است سومی همون نادر است که اولی اومده و کنیا شد شد مقبول مخبول است تأس تأس سو رن مفاعلن. و کف تقا مفایلون رن اصلا ر مفا و ك نیابة عن الفعل بلا ت أس سو رن و چف ت قا رن اوس سلا رن اوس سلا مستفع پس سب اون تایی که حالا اگه بخواییم در آورده باشید اولی در اومده متعلن مخبونه دومی مفعلن مخبونه سومی مفتعلن مطویه چهارمی مفعلن مخبونه پنجمی مفایلون مخبونه ششمی مستفعلن سالمه درست شد؟ این بحث دیده شد ما هر ستار تو این دید حالا بیاید یه دونه علت هم بیشتر تو بحر رجز نیست اونم علت قطع علت قطع که بهونی که داخل بشه بهش میگن مقطوعه بهش میگن مقتوعه علت بعد بهش میگن مقطوعه و هيا حذف و ساکن الوتد حذف ساکن وتد مجموع و اسکان ما قبله او ساکن وتد مجموع و اسکان ما قبلش ساکن وتد مجموع رو حذف کنیم ما قبلش رو ساکن کنیم حالا نگاه کنید الان رو ماس تف الان اون الان. اون الان اون نون رو حذف کنیم ما قبلش رو ساکن کنیم چیز حذف کنیم و ما قبلش رو ساکن کنیم حالا اگه ما حذف کنیم اون خط تیره آخر ساکنش رو حذف کنیم متحرکش رو ساکن کنیم خب اون موقعی متحرکم که قبل متحرک و ساکن تبدیل به خط تیره میشه یعنی در واقع قبلا هم داشتیم که علت قطع و تد مجموع رو تبدیل به سبب خفیف میکنه و تد مجموع رو تبدیل به سبب خفیف میکنیم اون چه علت قد و هیه حذفو ساکنه الوت مجموعه و اسکان ما قبله و, و هین اما به هنگامی که تلحق و مستفعلان تو غیر و چون ساکن خط تیره رو حصف میکنه متحرکش رو ساکن میکنه و خب وقتی متحرک ساکن بشه یه متحرکم قبله تبدیل به یه خط تیره میشه سبب خفیف و در واقع گفتیم علت وقت اینه که وتد مجموع رو تبدیل به سبب خفیف میکنه یعنی مستفعلن میشه قبلا هم اینو گفته بودیم <الغط> و یه هزف و ساکنه البته دل مجموعه و اسکانو ما قبله و هین اما تلحق و مصطفعلون تو غیرهایلا مفعولون خب میگه وقد یلحق و زحاف مال مالو من خب نه الخبنه قلطه زحاف الخبنه اضافه میشه وقد یلحق و زحاف الخبنه هازه تفعیلن. بعد ذهاف خبن به این تفعیله داخل میشه به همینی که شده مفعولن ذهاف خبن داخل میشه یعنی دومین حرف ساکنش حذف میکنه درستو خب چی میشه اون موقع اون جایی موقع که بشه مفعولن میشه فعولن بعد یلحق ذهاف الخبن هاذه تفعیلت عل و یغیرها ال پس علت قطع چیست عبارت است از اینکه شما میایید وتد مجموع آخر تفعیله رو تبدیل به سبب خفیف کنید حالا این به شکل غیر علمیش یعنی ما کارینه کار اینه که وتد مجموع تبدیل به سبب خفیف میشه اگه بخوایم به شکل زبان خود عروزی بگیم باید بگیم که در وتد مجموع ساکن اون رو حذف میکنیم و متحرک اون رو ساکن میکنیم و وتد مجموع تبدیل میشه به یه سبب خفیف خب مستفعلن میشه مفعولن این مفعولون رو الان بهش میگن چی؟ میگن متویگه گاه این قدر بر سر فعل یعنی گاه گاهی لاحق میشه به همین مقطوعه به این مفعولون گاهی داخل میشه زهاف خبر زهاف خبر چی بود؟ دومین حرف ساکن رو حذف میکردیم و قد یلحق و زهاف الخبر حاضه المقطوعت و یه غیرها اله فعولان تغییرش میده به وزن فعولان. نگاه کنید. تا اینجا این خیلی سخت نبود. مخصوصا که سه تا زهاف داشت. یه دونه علت و اون علت هم قبلا خونده بودیم مفتوه که مصطف تبدیل بشه به مفعولان. بعد هم گفتیم این مفعولان گاهی اوقات به هش زهاف داخل میشه فعولون تمام اون یکی ها هم که سه تا زعاف بود یکی متعلون که گفتیم نادر است و قبیهه که مخبوله بود دیگری مفاعلون که گفتیم زیاده این مخبونه بود سومی هم مفتعلون که مطویه بود این هم زیاده اما نه به اندازه اون مخبونه این ستا زهافن همه جا داخل میشن توی بحر رجز اون هم علت تیه است چه علت قطع است که مقتوعه درست میکنه که مستفعلن علون رو میکنه مفعولان و گاهی اوقات هم به هست دهاف خبر داخل میشه میشه فعول ده. کل این بحث رو ما جمع کردیم حالا میگه انواع بحر این بحر رجز چون خیلی گردش داره تو زبان عربی. گفتن می به میدان جنگ و رجز می خوندن. خیلی بازی داره. لذا نگاه کنید یاتی بر رجز و تام من گایوغا تام. بید. یعنی مصطف علون مصطف علون مصطف علون مصطف علون مصطف رو می یعنی یه مستفعلن از این بعد یکی از اون ور حذف شد مستفعلن مستفعل مستفعلن مستقر تا آخر مجزوم بود گاه اوقات مشتوره. یعنی نصفه یعنی به جای که شیش تا مستفعلن داشته باشیم سه تا هر سه تا مستفعلن شده یه بیت هر سه تا مستفعلن شده یه بیت یعنی مستفعلن مستفعلن مستفعلن علون یه بیت. دوباره مستفعلن مصطف علون مصطفو مصطف مثل شعر ناه شده حالا میخونیم مشتوره گای دیگه وقت منهو که یعنی یک ثبت مونده. مشمونده از شیشتا مصطفو دوتاست مصطفو علون مصطفو علون یه بیت. مصطفو علون یه بیت. مصطفو علون یه بیت. از ببینید زیاده <مزل> <مزل> <مز گای و تام شیشتا مصطفالان گای و قا مجلوه تا مصطفالان دو تا دوتا گای و سه تا مستف مصطفالان شده یه بیت گای و منحوکه که دو تا مصطفالان شده یه بیت و الایکه شرحها الیک اسم فعله یعنی خص همین چیزی که گفتیم مبنی هم هست الایکه اسم فعله اسم فعل دو جوره یه موقع اسم فعل منقوله که این الان منقول از جار و مجبوره اسم فعل منقوله یکی هم اسم فعل مرتجله مرتجل یعنی همینطوری ساخته شده از جایی گرفته نشد مثل اینکه مثلا میگه سه یعنی ساکت شد مرست شد الیکه یعنی خوبخوص شرحها و بگیر شرح این انواع بحر رجز رو انواع و بحر رجزه یعنی رجز و تامن و مجزوعن و مشتورن و منحوکن و علیکه شرحها اولش رجز تام رو بیان میکنه که رجز تام میگه یه رجز تام صحیح داریم یه رجز تام مقتوب دو تا بیشتر نداریم که چرا چون ما یه دونه علت بیشتر نداشتیم علت قد درست بعد میاد رو رجز مجزوع سرمایه میکنه یعنی رجز مجزوع رو میگه بعد از رجز مجزوع وارد به رجز منهوک میشه درست شو بعد مشتور و بعد منهوک اقسام اون رو بیان میکنی برای خاطر اینکه چون من بهر رمل رو هم برای شما امروز کامل کردم و بهر رجز رو هم اصل مطالبش رو بیان کردم و دیگه چیزی باقی نذاشتیم برای اینکه قاطی نشه مباحثم با مباحث قبل اینجا رو نگه میدارم درست شد انشاءالله تعالی هفته آینده بحر رجز رو با هم دیگه میخونیم قبلش دوباره این مباحثمون مورد یه مقدار تکرار میکنیم اوائل کار که اون خمیر مایه توی دستمون باشه بعد شروع میکنیم به خوندن انواع بحر رجز چون بحر مهمی است و خیلی کاربرد استعمالی در زبان عربی داره اینه که این رو یه مقداری روش تمرکز میکنیم هفته آینده انشالله اگر زنده بودیم براتون خواهیم کن که این بهر رجز رو شما داشته باشید شما هم وگر نهار خلاصه نویسی کنید مثل اینکه من تکرار میکنم میبینید که راحت میتونید رو تو مشت خودتون بگیرید و هیچ چیز سختی هم نیست البته هیچ انتظار نداشته باشید اگر صد بار هم این کتاب رو و این علم عروض رو تدریس کنید ممکن از ذهن انسان کاری اوقات اشتباه کنه. لذا باید حواسش باشه بالا و پایین. دوباره دقت کنه تا اینکه اشتباه در کار پیش نیاد. نگران چیزی نباشید. فقط یک مقدار نیاز به حفظ داره. این درس که انشالله یاد میگیرید و الحمدلله که از نعمت جوانی هم برخوردار هستید و ذهن پویایی هم دارید افس خواهید کرد و یاد هم میگیرید خداون توفیق بده به شما انشالله که در صحت و سلامت باشید رعایت مطالب بهداشتی رو بکنید که انشالله از هر گونه گزندی هم به دور موفق باشید انشاءالله خدا نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت الله و بره.